اما این روزا سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه که چند روز پیش هم نشان فتح یک رو که بالاترین نشان و مدال نظامی از معظم‌له بابت اون دو قایق آمریکایی گرفته بود سرش حسابی شلوغه و دائم داره در مکانهای مختلف این سردار فدوی سخنرانی میکنه و هی به ابعاد این حماسه اضافه میکنه ایشون دیروز دعوت شده بود به مجلس و در جمع نمایندگان از یک توطعه جدید پرده برداشتن موضوعی که ما نگران هستیم و قطعا نمایندگان محترم مجلس نگرانتر از ما باید باشند. الان دشمنان اقلاب اسلامی از امریکا و سیگورستا و کشورهای منطقه و حتی داخل کشور دنبال این هستن که شیطان بزرگی امریکا رو منتفی کنن دشمنی امریکا با انقلاب اسلامی رو منتفی کنن و جایگزین می با کشور سخیف و کوچکی مثل عربستان این کار نباید صورت بگیرید نباید مرگ بر امریکا بباد مرگ بر امریکا مرگ بر امریکا بله الکی نیست که یه ده شیطان بزرگی امریکا رو منتفی کننش بره که آقایون نماینده این شیطان بزرگ سهم منه حق منه عشق منه شیطان بزرگ نبود من این مدال فتح یک رو چجوری جوری می میگرفتم؟ آخه کدوم آدم عاقلی میاد و دشمنی با شیطان بزرگ رو بیخیال خیال بشه جاش با یه کشور کوچیک مثل عربستان دشمنی کنه؟ پس فردا برای آقا اف نداره بخواد جای شیطان بزرگ و آمریکای جهان خوار و اینا بیاد گیر بده عربستان سعودی. سعودی؟ بسیرت داشته باشین خب دیگه. لطفا اونایی هم که دنبال اینجور روابط و زدایی از رابطه با آمریکا هستن نیان تو مجلس. مرسی. اه.